اگر اتفاقی برایم بیفتد، دوست دارم خودم آنجا باشم. حس بسیار دلپذیری بود. هم بوسه شان و هم دانستن این که میتوانست اینقدر رک باشد. دانستن این جایی در یک زندگی هر اتفاقی میتوانست برای او بیفتد تا حدودی دلمشغولیش را در انتخاب انتخابهایش از بین ببرد. حقیقت وجودی تابع موج جهانی همین بود. نورا به این نتیجه رسید که هر اتفاقی بی افتد می تواند تقصیر فیزیک کوانتوم باشد. هوگو گفت: اتاق من با کسی مشترک نیست. نورا حالا بدون هیچ ترسی به او خیره شده بود. گویی رویارویی با خرص قطبی توان ذهنی زیادی برای تسلط به نورا داده بود که پیش از این اصلا حسش نمی کرد. خوب، شاید بتونی یه بارم که شده این عادتو کنار بذاری هوگو. اما رابطه فیزیکیشان فیزیکیشان چیزی جز ناامیدی برای نورا نداشت. وسط های رابطه نقل قولی از کامو به ذهنش آمد. شاید کاملا مطمئن نباشم که چه چی چیزی برایم جذاب است، اما کاملا میدانم که چه چی چیزی برایم جذابیت ندارد. احتمالا اصلا نشانی خوبی نبود که درست وسط ملاقات شبانه شان نورا، دوچار افکار فلسفی وجودی شده بود یا این نقل قول خاص از کامو در سرش پدیده شده بود. اما مگر همان کامو نبود که می گفت اگر اتفاقی برایم بیفتد دوست دارم خودم آنجا باشم. را به این نتیجه رسید که هوگو در نظرش آدم عجیبی است. به عنوان مردی که اینقدر سمیمی است و عمیق حرف میزند بیش از حد از لحظه حال جداست. شاید اگر به اندازه او زندگی های مختلفی را تجربه کند دیگر تنها کسی که میتواند به نوعی رابطه ای با او داشته باشد خودش است. لورا حس می کرد این گار اصلاً آنجا نیست چند لحظه بعد واقعاً نبود خدا و دیگر کتابداران شما کی هستین اسمم رو که میدونی خانم علم هستم لوئیس ایزابل علم شما خدایین خانم علم لبخند زد من همونیم که هستم که یعنی کی کتابدار اما یه آدم واقعی نیستین فقط یه یه سازوکار خودکار هستین اگه همه نیستن؟ نه اینطوری شما شما محصولی یه جور ارتباط عجیب بین ذهن من و جهانهای موازی هستین. یه جور سادهسازی تابع موج کوانتومی. حالا هرچی که هست. به نظر میاد خانم علم از این حرف او نگران شده. چه مشکلی پیش اومده؟ نورا در حالی که به زمین سنگی زرد و قهوهی کتابخانه خیره شده بود، به خرس قطبی بیفکر کرد. نزدیک بود کشته بشم. یادته که اگه توی یه زندگی بمیری دیگه نمیتونی برگردی اینجا. این این عادلانه نیست؟ کتابخونه قوانین سرسختانه ای داره کتابها ارزشمندن باید با احتیاط باهاشون رفتار کنی. اما اینا همشون زندگی های نمونه های دیگه ای از منن خود من نیستن. آره؟ اما وقتی تو داری تجربهشون شون می کنی خود تو هم باید عواقب به کارت رو بپذیری خوب اگه بخوام راستشو بگم به نظرم این قانون خیلی مسخر است دو گوشه یه دهان کتابدار بالاتر رفت و لبخندی شبیه برگی بر زمین افتاده زد خوب جالب شد چی جالب شد؟ این حقیقت که نظرت به این اندازه راجب مرگ تغییر کرده چی؟ قبلا میخواستی بمیری، اما دیگه نمیخوای. نورا متوجه شد خانم علم تا حد زیادی به درک یک نکته نزدیک شده، اما نه تمام آن. خوبه، هنوز فکر می زندگی واقعیم ارزش موندن نداره. در واقع تجربه ای که الان داشتم هم همین نتیجهگیری رو به هم اثبات کرد. خانم علم سرتکان داد. من فکر می کنم واقعا به این حرفت عقیده نداری. چرا دارم؟ وگرنه اینطوری نمی گفتم که نه کتاب حسرت‌ها داره سبکتر میشه حالا دیگه خیلی جاهاش سفیده به نظر میرسه تمام زندگی داشتی حرفهایی رو میزدی که واقعا بهشون عقیده نداشتی این یکی از موانع توه موانع؟ آره خیلی مان توی سرت داری نمیذارن حقیقت رو ببینی حقیقتی چی؟ حقیقت وجودی خودت، دیگه واقعاً باید تلاش تو بیشتر کنی تا حقیقت رو ببینی چون مهمه، فکر میکردم بینهایت زندگی دارم که میتونم بینشون انتخاب کنم باید زندگی رو انتخاب کنی که توش در شادترین حالتی وگرنه خیلی زود دیگه قدرت انتخابی نخواهی داشت با یکی آشنا شدم که خیلی وقتی داره این کارو میکنه و هنوز زندگی رو پیدا نکرده که ازش خوشش بیاد. خوب، هوگو شرایط خاصی داره که ممکنه تو نداشته باشی. هوگو، از کجا؟ اما بعد یادش آمد که خانم علم خیلی بیشتر از آنچه باید از همه چیز اطلاع داشت. کتابدار ادامه داد. به دقت و محتاطانه انتخاب کنی ممکنه یه روزی دیگه کتابخونه اینجا نباشه و بمیری. چند تا زندگی دیگه میتونم انتخاب کنم. نه اینجا چراغ جادوه، نه من قول چراغ جادوام هیچ عدد مشخصی وجود نداره. ممکنه یکی باشه، ممکنم هست تا باشه. اما فقط تا وقتی که زمان توی کتابخونه خونه ی نیمه شب، خب، نیمه شب بمونه. بینهایت زندگی رو میتونی انتخاب کنی چون تا وقتی که زمان توی نیمه شب متوقف شده باشه زندگید، زندگی اصلید جایی بین مرگ و زندگی گیر افتاده اگه زمان در اینجا تغییر کنه این یعنی اتفاقی خیلی دنبال کلمه مناسب گشت تاثیر گذار رخ داده اتفاقی که کتاب خونه ی نیمه شب رو نابود میکنه و ما رو هم با خودش میبره به همین خاطرم توصیه میکنم مراقب باشی. من اگه جات بودم خیلی دقیق به این فکر می کردم که میخوام کجا باشم. برام واضحه که پیشرفت گردی. به نظر میرسه متوجه شدی که زندگی ارزش تجربه کردن رو داره. فقط باید زندگی رو پیدا کنی که میخوای توش بمونی. اما مطمئن باش نمیخوای قبل از اینکه فرصت عبور پیدا کنی، دروازه بسته بشه. هر تایشان تا مدتی بسیار طولانی ساکت بودند در این این نورا به کتاب های اطرافش خیره نگاه می کرد. به تمام آن احتمالات آرام و آهسته در ردیف قفصه ها قدم می زد و به این فکر می کرد که زیر جلد هر کدام از این کتاب ها چیست و آرزو می کرد که روی عطف هر کتاب سر نخی از محتوای آن نوشته شده باشد صدای خانم علم را از پشت سرش شنید خوب، کدوم کتاب رو میخوای؟ لورا یاد حرفهای هوگو در آشپزخانه افتاد بلند پرواز باش کتابدار نگاه پرنفوزی داشت سید کیه و چی میخواد؟ نورا به نزدیک ترین راه دسترسیش به شادی فکر کرده و دریافت که پاسخ موسیقی است بله هنوز هم بعضی وقتها پیانو و کیبرد میزد اما از آفرینش و از خواندن دست برداشته بود به بارهای اولی فکر کرد که با خوشحالی در میخانه ها آهنگ آسمان زیبا را می نواخت. یاد برادرش افتاد که با او و راوی و اله روی صحنه مسخر بازی در میآوردند. بنابراین دقیقا میدانست با باید کدام کتاب را بخواهد؟ شهرت خیز از عرق بود این نخست چیزی بود که متوجهش شد آدرنالین زیادی در بدنش جریان داشت و لباس به پوستش چسبیده بود چند نفر اطرافش بودند که تعدادیشان هم گیتار داشتند می توانست سر و صدا را بشنود صدای قدرتمند و پرتعداد انسانها همچون قرشی جاندار که آهسته آهنگ و ریتم می گرفت و کم کم به همخانی تبدیل می شد زنی جلوی نورا بود و صورتش را با هول می میکرد. نورا لبخند زد و گفت: ممنون. زن جوری غافلگیر شد که انگار خدایش با او حرف زده بود. نورا یکی از مردها را که چوب طبل در دست داشت شناخت. موهایش را سفید و بور رنگ کرده بود و کوژ شلوار نیلی رنگ سیری به تن داشت. اما زیر کت پیراهن نپوشیده و قفسه سینهش اوریان بود. حاملاً با آن راوی فرق داشت که همین دیروز در روزنامه فروشی بدفورد ایستاده بود و مجلات موسیقی را نگاه می کرده. یا حتی با آن راوی کارمند مانند که پیراهن آبی به تن داشت و سخنرانی مزخرف او را در هتل میان ای تماشا کرده بود. نورا گفت، راوی خیلی خفن شدی. راوی به خاطر سر و صدای محیط صدای او را نشنیده بود. اما نورا حالا سوال دیگری داشت با صدایی تقریباً به بلندی فریاد پرسید، جو کجاست؟ یک لحظه به نظر رسید راوی گیر شده یا ترسیده. نورا هم خودش را برای شنیدن حقیقتی وحشتناک آماده کرده بود، اما از این خبرها نبود. احتمالاً مثل همیشه داره با خمرنگارهی خارجی بش می‌کنه. نورا اصلاً نمیدانست قضیه چیست. ظاهراً جو هنوز عضو گروه موسیقیشان بود، اما نه در حدی که بخواهد روی صحنه با آنها اجرا کند. اگر هم با گروه موسیقی اجرا نمی کرد، پس یعنی اتفاقی که باعث شده بود گروه را ترک کند، به آن اندازه شدید یا بد نبوده که کلاً برود و پشت سرش را نگاه نکند. طبق چیزی که رابی گفت و همچنین حالت گفتنش، جو در عمل هنوز عضوی از گروه موسیقی بود، اما الا آنجا نبود. مردی عزولانی و خالکوبیدار که سرش را ستیقه کرده بود، گیتار بیسن گروهشان بود. نورا دوست داشت اطلاعات بیشتری کسب کند اما مشخصاً الان زمان خوبی برای این کار نبود رابی دستش را در هوا گرداند و به صحنه اجرای بسیار بزرگی اشاری کرد که نورا حالا می توانست ببیندش حس می کرد نفسش بند آمده نمیدانست باید چه احساسی داشته باشد راوی گفت وقت اجرای دوباره است نورا سعی کرد فکر کند مدت زمان زیادی از آخرین اجرایش میگذشت. حتی همان موقع هم حدودن دوازده مشتری بیعلاقه در میخانه زیرزمینی تماشا بودند رابی به سمتش خم شد حالت خوبه نورا صدایش خوشگ و خشن بود جوری اسم او را گفت که انگار هنوز هم همان حس تنفری را در خود داشت که نورا دیروز در زندگی دیگری از طرف او احساس کرده بود نورا گفت آره این بار دیگر واقعا داشت فریاد میزد. معلومه. فقط نمیدونم واسه اجرای دوباره چی بزنیم. راوی شانه بالا انداخت. همونی که همیشه میزنیم. آره باشه. نورا سعی کرد فکر کند. به صحنه نگاه کرد. صحنه نمایش عظیمی را دید که واژه هزار تو رویش چشمک میزد. و به سمت جمعیت قران میچرخید. نورا فکر کرد خیلی بزرگیم، اینقدر بزرگ که در استادیوم اجرا کنن کیبورد و چهار پایه ای را دید که اندکی قبل خودش رویش نشسته بود عضای دیگر گروهشان که نورا اسمهایشان را نمیدانست میخواستند روی صحنه برگردند نورا بلندتر از صدای جمعیت پرسید توی کدوم شهریم؟ پاک تعطیل شده؟ مرد درویش پیکلی که کله‌اش تراشیده داشت و گیتار بیس را در دست گرفته بود به او گفت: ساپالو، توی بریزیلی؟ همهشان جوری به نورا نگاه کردند که انگار دیوانه شده بود. این چهار روز اخیر کجا بودی؟" نورا گفت: "آسمان زیبا." حامد میزد احتمالا تمام کلماتش را به یاد خواهد آورد. بیاین آسمان زیبا را اجرا کنیم. دوباره؟" راوی خندید. صورتش از عرق برق میزد. همین ده دقیقه پیش اجراش کردیم. نورا گفت: « خیلی خوب، گوش کنین؟ حالا سعی می کرد صدای فریاد مانندش از داد و فریاد تماشاچیان که از آنها اجرای دوباره میخواستند بلندتر باشد. توی این فکر بودم که یه کار متفاوت انجام بدیم تغییرش بدیم واسه همین گفتم یه آهنگ متفاوت از همیشه اجرا کنیم آن یکی دختر عضو گروه گفت، باید زوزه رو اجرا کنیم. بند فیروزه رنگ گیتار لید بود. همیشه زوزه رو اجرا می کنیم. نورا در تمام عمرش اسم آهنگ زوزه را نشنیده بود. بلوف زد. آره میدونم، اما اما بیا بیاین عوضش کنیم. یه کاری کنیم که انتظارشو ندارن. قافلگیرشون کنیم. راوی گفت، داری زیاد از حد به قضیه فکر می دورا. فقط همین یه مدل فکر کردن و بلدم. راوی شانه بالا انداخت خب چیکار کنیم؟ نورا به سختی سعی می کرد فکر کند یاد اش و کتاب موسیقی سایمون و گارفانکلش افتاد بیاین پلی بر آبهای متلتم رو اجرا کنیم راوی ناباورانه گفت چی؟ به نظرم باید اجراش کنیم همه غافل گیر میشن. انها دختر دیگر گروه گفت، من که دوستش دارم، بلدش هم هستم. راوی با بیخیالی گفت، همه اونو بلدن ایمانی. در حالی که نهایت تلاشش را می تا شبیه ستاره موسیقی را حرف بزند گفت. دقیقا، بریم اجراش کنیم. بریم اجراش کنیم. وحشی و آزاد نورا به کیبورد رسید روی چهار پایه نشست و میکروفون را کمی جلوتر آورد گفت ممنون سا و پاولو دوستون داریم مردم برزیل در پاسخ به او قریدند. ظاهراً قدرت همین بود قدرت شهرت مثل ستاره های پاپی که نورا در شبکه های اجتماعی دیده بود و میتوانستند فقط یک کلمه بگویند و در جواب یک میلیون لایک و اشتراک گذاری نصیبشان بشود. شهرت تمام و کمال یعنی وقتی به جایی برسی که با کمترین تلاش به توانی قهرمان، نابغه یا حتی خدا به نظر برسی. اما نکته منفیش هم پرخطر بودنش بود، چون درست به همان سادگی میشد، مثلا به جایگاه شیطان، شرور داستان یا صرفاً موجودی بیشعور نزول کرد. قلب نورا جوری تند می تپید که انگار میخواست روی تناب بندبازی قدم بگذارد حالا می توانست صورت بعضی از هزاران تماشاچی نشسته در تاریکی را ببیند. کوچک و غریبه بودند و بدنهای پوشیده در لباسشان تقریبا نامری به نظر میرسید در واقع نورا به بیست هزار سر قند شده خیره مانده بود دهانش خشک شده بود به زحمت حتی می توانست حرف بزند به همین خاطر نمیدانست چطور قرار است برایشان آهنگ بخواند یاد وقتی افتاد که برای دن آهنگی خواند و دن به مسخره وانمود مود کرد جا خورده سر و صدای جمعیت کمتر شد وقتش بود نورا گفت خیلی خوب این هم یه آهنگ که احتمالاً قبلا شنیدین متوجه شد چنین حرفی بسیار احمقانه بود به احتمال زیاد همهشان به این دلیل پول داده و بلیت کنسرتش را خریده بودند که قبلا خیلی از آهنگهایش را شنیده بودند آهنگیه که ارزش زیادی برای من و برادرم داره از همین حالا جمعیت داشت دیوانه میشد همه جیغ میکشیدند و میقرریند و دست میزدند و همخانی میکردند پاسخشان به نورا در نوع خودش پدیده بود. نورا برای لحظه کوتاه احساس کرد که کلوپاترا هست. شدیدن وحشت زده. دستهایش را در وضعیت می مول ماژور قرار داد و با دیدن خالکوبی عجیبی روی ساقه بدون موی دستش یک لحظه حوزش پرد شد. با خطی زیبا و زاوی دار چند کلمه نوشته شده بود. نقل قولی از هنری دیوید سرو همه چیزهای خوب وحشی و آزادند. نورا چشمانش را بست و قسم خورد تا وقتی که آهنگ را تمام نکرده آنها را باز نکند. میفهمید فهمید که چرا شپن اینقدر دوست داشته در تاریکی بنوازد. اینطوری خیلی راحت تر بود. نورا با خود فکر کرد. وحشی؟ آسا. در حال آواز احساس سرزندگی می کرد. حتی سرزنده تر از زمانی که با بدن قهرمان المپیکش در استخر شنا کرده بود. به این فکر کرد که چرا این قدر از خانندگی برای جمعیت می ترسید. حس ای داشت. پس از اتمام آهنگ و وقتی هنوز روی صحنه بودند، راوی به سمتش آمد و در گوشش داد زد. خیلی خاص بود به سر. نورا گفت، خوبه. حالا بیا با آهنگ زوزه تمومش کنیم نورا سر تکان داد و بعد اجولانه قبل از آنکه کسی دیگر فرصت حرف زدن داشته باشد در میکروفون گفت ممنون که اومدین امیدوارم همتون شب خوبی داشته باشین توی راه مراقب باشین راوی توی اتوبوس در مسیر بازگشت گفت توی راه مراقب باشین نورا یادش نمی آمد. راوی هیچ وقت اینقدر بیشعور بوده باشد به نظر می آمد از چیزی ناراحت است. نورا فکرش را بر زبان آورد. مشکلش چی بود؟ اصلا همیشه نبود. واقعا؟ خب با شیکاگو که فرق داشت. واسه چی؟ مگه توی شیکاگو چیکار کار کردم؟ راوی خندید. نکنه تو جراحی کردی؟ نورا به گوشیش نگاه کرد. در این زندگی آخرین مدلش را داشت. پیامی از ایزی. همان پیامی بود که در زندگیش با دن توی میخانه دریافت کرده بود البته نه پیام بلکه عکسی از یک نهنگ در واقع ممکن بود عکسی نسبتاً متفاوت از یک نهنگ بوده باشد جالب بود چرا در این زندگی هم هنوز با ایزی دوست بود اما در زندگی اصلیش نه به هر حال می توانست با اطمینانی تقریبی بگوید که در این زندگی با دن ازدواج نکرده است نگاهی به دستش انداخت و از اینکه انگشت حلقهاش کاملا خالی است، احساس آرامش کرد نورا هدس میزد دوست ماندنشان به این خاطر بوده که قبل از تصمیم ایزی برای رفتن به استرالیا نورا و هزارتو حسابی معروف شده بودند در نتیجه تصمیم نورا برای نرفتن با ایزی بیشتر درک پذیر بود یا شاید هم ایزی از اینکه دوستی مشهور داشته باشد خوشش می آمد. ایزی چیزی زیر عکس نهنگ نوشت همه چیزهای خوب، وحشی و آزادند. حتی درباره خالکوبی نورا میدانست. پیام دیگری از ایزی برایش آمد. امیدوارم توی برزیل حسابی خوش گذشته باشه. میدونم که ترک کندی. بمنونم که بلیت بریسبین رو ردیف کردی. اونطور که ما توی ساحل طلایی میگیم حسابی خرکیفم. چند شکلک نهنگ و قلب و دست های و میکروفون و نوت‌های موسیقی هم آخر پیام بود. لورا این را بررسی کرد. در این زندگی یازده میلیون و سیصد هزار دنبال کننده داشت. لعنتی. عجب ظاهر خوبی داشت. وسط موی سیاه طبیعیش یک دسته سفید داشت. صورتش را مثل خوناشام ها رایش کرده بود و لبش پرسینگ داشت. خسته به نظر می رسید. اما فکر می کرد خستگیش فقط نتیجه گذراندن زندگیش در تورهای موسیقی مختلف باشد. از آن خستگی های و زیبا بود. مثل اینکه خاله باال بیلیلیش باشد. یک عکس سلفی گرفت و متوجه شد با اینکه دقیقا شبیه عکسهای به شدت فیلتر خورده و از پیشتر راهی شده که توی حسابش نیست، خفن تر از آن به نظر میرسد که تا به حال حتی تصور کرده بود. البته همون عکسای توی حسابش هم برای مجلات گرفته شده بودند مثل زندگیش توی استرالیا در این زندگی هم شعرهایش را آنلاین منتشر می‌کرد اما در این زندگی فرقش این بود که هر شعر تقریبا نیم میلیون لایک می‌گرفت حتی اسم یکی از شعرها هم آتش بود اما با آن یکی فرق می‌کرد آتشی در خود داشت آتشی که نمیدانست گرمش می‌کند یا نابود و بعد فهمید آتش هدف ندارد. هدف فقط برای او بود. قدرت متعلق به او بود. و آن شعر این بود. زنی کنار نورا نشسته بود. این زن در گروه موسیقی نبود. اما به ظاهرش می آمد آدم مهمی باشد. حدوداً پنجاه ساله بود. شاید مدیر برنامهشان بود. شاید هم برای ناشر موسیقیشان کار میکرد. حال و هوای مادری جدی و سختگیر را داشت. اما حرفش را با لبخند شروع کرد. گفت خوندن آهنگ سایمون و گارفانکل هوشمندانه بود. توی آمریکای جنوبی ترند شدی. ایول با حسابها دربارش پست گذاشتم. جوری این حرف را زد که انگار اتفاقی کاملا عادی بود. آهان آره باشه. امشب توی هتل چندتا تا مصاحبه کوتاه و آخر وقتی داری. فردا صبح اول وقت هم کارمون دوباره شروع میشه. اول میریم ریو، بعد هم هشت ساعت مصاحبه همش توی هتل. ریو، درباره برنامه توری این هفته میدونی دیگه درسته؟ انصافا م... میشه دوباره یادم بیاری. زن با شوخ طبعی آه کشی. کوی این که نورا برنامه تورش را نداند کاملا با شخصیتش همخانی دارد. آره فردا میریم ریو واسه دو شب. بعد شب آخر برزیل رو توی پورتوال گری هستیم. بعد سانتیاگو، شیلی، بوئنوس آیرس، و در آخر لیما. این آخرین شهرمون توی آمریکای جنوبی. این آخرین شهرمون توی آمریکای جنوبیه. هفته دیگه تور سیا شروع میشه. ژاپن، هنگ کنگ، فیلیپین و تایوان. پرو؟ پرو؟ توی پرو هم معروفی؟ نورا قبلن هم رفتی پرو مگه یادت رفته؟ پارسال بود، دیوونه شده بودن، پونزده هزار نفر اومده بودن همون جاست، توی پیست اسب پیست پیسته اسب توانی آره یادمه شب خوبی بود، خیلی خوب متوجه شد که احتمالا این زندگیش دقیقا همین حس را دارد مثل پیست اسب توانی بزرگ است اما نمیدانست در این تحلیل خودش اسب است یا اسب سوار راوی روی شانه زن زد جوانا پادکست فردو چه ساعتیه؟ اوه لعنتی راستش امشبه زمان بندی عوض شد ببخشید یادم رفت بگم اما فقط می خال با نورا حرف بزنن بنابراین اگه تو بخوای میتونی زود بخوابی راوی انگار که به او برخورده باشد شانه بالا انداخت آره باشه جوانا آه کشید. تقصیر و گردن من ننداز. من فقط پیغام رسونم. البته هیچ وقت این موضوع جلوتو نگرفته. نورا دوباره به فکر این افتاد که برادرش کجاست. است؟ اما تنش میان جوانا و راوی باعث می شد احساس کند نباید سؤالی بکند که مشخصا خودش باید جوابش را میدانست. بنابراین در حالی که اتوبوسشان در بزرگراه راه چهار پیش می رفت، نورا از پنجره به بیرون خیره شد. نور چراغ عقب ماشین ها و کامیون ها و موتورها مثل چشمانی قرمز تماشایشان می کردند. آسمان خراشها ها جلوی پسامینهی از آسمان تیره و مرتوب و ابرهایی حتی تیره تر قرار داشتند و فقط چند مربع نورانی کوچک در طبقاتشان دیده می شد. درختان مخفی، در سایه های کنار و وسط بزرگراه آنها را در مسیر همراهی و ترافیک را به دو بخش تبدیل می کردند. اگر فرد شب هم در این زندگی باشد، از او انتظار میرود به اندازه یک کنسرت کامل آهنگ اجرا کند. آن هم آهنگ هایی که اصلا بلدشان نیست. به این فکر کرد که چقدر طول می کشد تمام فهرست آهنگ ها را حفظ کند. گوشیش زنگ خورد. تماس تصویری اسم تماس رایان بود جوانا اسم را دید و نیشخندی کوچک زد <تصفح> بهتری جواب بدی بنابراین نورا با اینکه نمیدانست این رایان کیست و عکس زیر اسمش هم بیش از اندازه مات بود که بشود او را شناخت تماس را جواب داد بعد او را دید چهره ای که بارها در فیلم و عکس مختلف دیده بودش سلام عزیزم گفتم زنگ بزنم احوار دوستم رو بپرسم هنوز که با هم دوستیم مگه نه دورا صدایش را هم می‌شناخت آمریکایی خشن جذاب معروف صدای جوانا را شنید که به کسی دیگر در اتوبوس میگفت داره با رایان بیلی حرف میزنه رایان بیلی، همان رایان بیلی معروح، همان رایان بیلی که توی تصورات نورا همیشه با هم توی جکوزی خانه او در وست هالیوود می و از پشت پرده بخار آب گرم غرق در گفتگوی امیق در درباره افلاتون و هایدگر شدند. نورا، صدامو میشنوی انگار ترسیدی؟ آره آره من فقط همین توی اتوبوس یه اتوبوس بزرگ مال تور آره سلام حدس بزن کجا؟ را اصلا نمیدانست باید چه بگوید؟ توی یه هم جواب نامناسبی به نظر می رسید واقعا نمیدونم رایان گوشی را گرداند و ویلای وسیع و مجللی پر از اسباب و اساسی پرزرق و برق را نشانش داد. که در آن کاشی های سفالی تراکوتا کار شده بود و یک تخت دو سایه باندار با پرده های توری هم در آن قرار داشت. بارید مهیکو مکزیک را به شوخی مثل اسپانیایی هامهیککو تلفظ کرده بود. ظاهر و صدایش اندکی با راانویریه توی فیلم ها تفاوت داشت. کمی درشت هیکلتر و حرف زدنش کمی نامفهومتر بود. شاید مست بود. سر صحنه. داریم میخانی ی دو رو ضبط میکنیم میخانه آخری آخر دو؟ اوه خیلی دوست دارم اولیش رو ببینم رایان جوری زد زیر خنده که انگار نورا خنده دارترین که دنیا را گفته مثل همیشه کم خنده اینو نو رایان ادامه داد توی کاساده تو مستقر شدم یادته که یه آخر هفته اینجا بودیم دقیقا توی همون ویلا مستقرم کردن یادتی؟ به یاد تو دارم مارگاریتای مسکال میخورم تو گجایی؟ برزیل همین الان کنسرتمون توی ساو پاولو تموم شد او تو یه قاره ایم. جالبه آره جالبه نورا گفت خیلی خوب بود خیلی رسمی حرف میزنی. نورا میدانست که نیمی از آدمهای توی اتوبوس صدایش را گوش میکردند راوی هم همانطور که از بطری نوشیدنی میخورد به او خیره شده بود فقط میدونی توی اتوبوسم کلی آدم دور و برمه رایان آه کشید و جوری گفت آدم که انگار داشت فوش میداد همیشه کلی آدم همه جا هست مشکل همینه اما خوبه اخیرا خیلی فکر کردم درباره چیزی که توی برنامه جیمی فلون گفتی چی گفتم میدونی دیگه همون که گفتی صرفا رابطه به انتها رسیده و با هم دیگه مشکلی نداریم فقط میخواستم به خاطر این هر فضا تشکر کنم چون میدونم ساختن با من خیلی سخته خودم اینو میدونم اما دارم روش کار میکنم کار روانشناسی که میرم پیشش خیلی خوبه خوب، عالیه دلم برای تنگ شده نورا خیلی با هم خوش میگذاروندیم اما خوبه زندگی جز رابطه میخواد در حالی که سعی می کرد، تصوراتش را مهار کند گفت آره کاملا موافقم همه جوره به همون خوش میگذشت ولی حق با تو بود که خاصی تمومش کنی کار درست رو کردی از نظر ترتیب وقاه کیهانی میگم هیچ داافعه وجود نداره فقط بحث تغییر مسیر میدونی این مدت خیلی فکر کردم درباره کیهان دارم خودم رو باهاش هماهنگ می کنم کیهان هم توی این مدت بهم به گفته که باید دست و وهامو جمع کنم همیشه به تعادل بر گرده به سهر. همون زیادی پرشور بود و زندگی هم زیادی پر هیجانه. دقیقا بحث قانون سوم نیوتونه که هر کنشی به یه واکنش ختم میشه. بالاخره یه چیزی باید این وسط خراب میشد و تو بودی که اول متوجه این موضوع شدی. حالا من و تو زره های توی کیهان هستیم که ممکنه یه روز دوباره توی شطو مارموند به هم برسیم. دورا اصلا فکر کنم بود چی؟ قانون سوم حرکت رایان مثل سگی که گیت شده باشد سرش را کش کرد چی؟ ولشگون مهم نیست رایان آه کشید به هر حال میخوام اول مارگاریتا متمون کنم چون فردوسو صبح زود جلسه تمرین دارم واسه همین مسکال ریختم توش نه تکیلا باید بدنم و پاک نگه دارم یه مربی جدید گرفتم قبلا اممهی کار میکرده خیلی خشنه باشه. نونو no, no. بله، میتونی یه بار دیگه به همون اسم مخصوص خودت صدام کنی؟ میدونی که کدومو میگم، معلومه آره، البته، نورال سعی کرد حدس بزند اسم مخصوصش چه بوده؟ رای رای، نونه چاودار، افلاتون، نمیتونم، نمیتونم، دوربرت آدمه؟ نورا وانمود کرد که اطراف را می پاید دقیقا و خوب می حالا که زندگی از هم جدا شده به نظرم یکم نامناسبه رایان لبخندی غم گیم زد گوش کن واسه کنسرت آخرت توی لسانجلیز حتما میام ردیف اول دقیقا وسط نمیتونی تونی منصرفم کنی باشه؟ خیلی لطف داری دوستای همیشگی؟ دوستای همیشگی؟ نورا با درک اینکه به انتهای مکالمهشان نزدیک میشوند، ناگهان احساس کرد میخواهد چیزی بپرسد. واقعا به فلسفه علاقه داشتی؟ رایان آروغ زد. دانستن اینکه رایان بیلی هم یک انسان است و در بدنی انسانی زندگی می کند که توانایی تولید گاز را دارد برای نورا خیلی عجیب و شکر کننده بود. چی؟ فلسفی سالها پیش که نقش افلوتون رو توی آتری ها بازی میکردی توی یه مصاحبه گفتی خیلی آثار فلسفی می خونی. من زندگی رو مطالعه می زندگیم زندگی هم واسه خودش یه فلسفه است. نورا اصلا نمیدانست منظورش از این حرف چیست اما تا حدودی افتخار میکرد که این یکی نورا توانسته توانست رابطش را با یک بازیگر درجه یک سینما قطع کند. فکر کنم اون موقع گفتی که آثار مارتین هایدگر رو میخیم. مارتین چی, چی؟ او احتمالاً مزخرفاتی بوده که به مصاحبه کننده ها میگیم. میدونی دیگه همه جور حرفی ممکنه پسنیم. آره البته. آدیوس آمیگا، آدیوس رایان. بعد هم تماسشان قطع شد. جوانا بدون اینکه چیزی بگوید به او لبخند میزد. در رفتار جوانا حس آرامش بخش و معلم مانندی بود. نراحت میزد در این زندگی از جوانا خوشش میآید. اما بعد یادش آمد قرار است در پادکستی به نمایندگی از گروه موسیقیشان حرف بزند. آن هم در حالی که اسم نصف اعضای گروه آخرین آلبوم یا حتی یکی از آلبومهایشان را نمیدانست. اتوبوس جلوی هتل بزرگ و باشکوهی در خارج از شهر متوقف شد. ماشین های گران قیمت با شیشه های دودی، درختان نخل پیچیده میان لامپ ریسمانی و معماری خاصی که انگار متعلق به سیاره دیگر بود جوانا به او گفت قبلا کاخ بوده یه معمار بریزیلی خارق‌العاده در راهیش کرده اسمش رو یادم رفته اسمش را جستجو کرد پس از چند لحظه سکوت گفت اسکار نیمایر، نوگرا بوده، اما گویا این هتل از بقیه کارهای معمولش شکوه منتر محسوب میشه، بهترین هتل برزیله، پس از آن نورا جمعیتی کوچک از مردم را دید که مثل گداهای کاسه دست، گوشیهای توی دستشان را به سمت او دراز کرده بودند و از رسیدنش فیلم میگرفتند،